ضعیفی که با قوی دلاوری کند یار دشمن است در خلا که خیش سایه پرورده را چه طاقت آن که رود با مبارزان به قتال سوست بازو به جل میفکند پنج با مرد آهنین چنگا